ببینم شما همسرتون رو درک میکنین بعضی میگن هرگز نمیتونن همسرشون رو درک کنند با این حال ما میبینیم که اون موضوعی حیاتی در رشد ازدواج ما هست باید اصل ساده اما مشکلی رو که به اصل طلایی معروفه در ازدواجمون یاد بگیریم همونی که عیسی گفت با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید اونها با شما رفتار کنن همونطور که دلمون میخواد همسرمون ما رو درک کنه، ما هم باید سعی کنیم اون رو درک کنیم. ما که در سری درس‌های های خانواده و ازدواج در دانشکده یک کچک کتاب مقدس به ما پیوستیم. پس بیایید با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم. خانواده شماره هفت حلقه چهار درک متقابل درک متقابل در ازدواج چقدر همیت داره؟ اتحاد بین دو نفر چقدر همیت داره؟ من گمان نمی‌کنم ما بتونیم بر اهمیت اتحاد بین دو نفر تاکید نکنیم که با اراده خدا به همدیگر ملحق شدن و قصد دارند نقشه و طرح خدا رو در زندگی زناشویی تجربه کنند وقتی به مساله درک متقابل میرسید مخصوصا بعد از بحث مکالمه سازگاری و محبت چیزی که در واقع میگید اینه که درک متقابل و بقیه حلقه‌ها که به هم پیوسته هستند تفاوت بین داشتن یک زندگی منظم و یک رابطه رو نشون میده بذارید توضیح بدم که منظورم از این چیه من سالها خدمتم رو برای خدمت به مردان سپری کردم به مدت 20 سال هر هفته با مردان صبحانه می‌خوردیم گاهی دو روز در هفته با اونها کار می‌کردم از این رو کتاب مقدس رو به اکثر مردان تعلیم داده بودم مطالب زیادی در رابطه با ازدواج به اونها تعلیم داده بودم و به اونها گفته بودم که به همه ی کارهایی که همسرتون برای شما انجام میده فکر کنید اگر شما کاملاً ثروتمند باشید یک مولتی میلیاردر باشید، شاید بتونید همه ی کارهایی رو که زنتون برای شما انجام میده با پول بخرید. شما میتونید کسی رو برای کارهای خانهداری عجیر کنید. میتونید آشپزی استخدام کنید و حتی میتونید کسی رو عجیر کنید که براتون بچه به دنیا بیاره. میتونید دعایی برای بزرگ کردن فرزندانتون استخدام کنید. و البته میتونید روابط جنسی رو هم با پول بخرید. اما یک چیز هست که نمیتونید اون رو با پول بخرید. و اون داشتن یک رابطه سامیمانه هست. حالا یه مرد سکولار شاید بگه داشتن رابطه باعث گرفتاری هست، من این رو هم خواهم خرید. شما اگر اونقدر پولدار باشید میتونید همه این چیزهایی که همسرتون به شما میده بخرید. اما نمیتونید یک رابطه سامیمانه رو بخرید. به عنوان اشخاصی روحانی ما روی کردی روحانی به مسئله ازدواج خانواده داریم. ما به این واقعیت متحد هستیم که خدا این طرح رو ریخته، تا یک رابطه خوب وجود داشته باشه و از اونجایی که این یک رابطه هست شما باید بر روی رابطه کار بکنید ما به درک متقابل رشد یگانگی میگیم یا رشد رابطه قبلا گفتیم که گفتگو ابزاری هست که شما به وسیله اون در یگانگی میمونید شما اگر ابزارهای گفتگو و مهارت اون رو داشته باشید میتونید روی یگانگیتون کار کنید گفتیم که سازگاری نشانه یگانگی هست از جمله ارسه های سازگاری، سازگاری ارزشی هست. دیگر ارسه سازگاری، سازگاری جسمانی هست. بعد گفتیم که محبت نیروی محرکه ای هست که روابط و یگانگی رو به پیش میبره. این نیروی محرکه هست که همه چیز رو اونطور که باید به کار وامیداره. محبت نیروی محرکه بسیار جدی هست. حالا ما به نقش حیاتی درک متقابل یا تفاهم نگاه میکنیم و میگیم که درک عامل رشد یگانگی هست و منظورمون اینه که ما باید همدیگر رو درک بکنیم و اگر همدیگر رو درک بکنیم میتونیم در یگانگی رشد کنیم. میتونیم در رابطهمون رشد کنیم. حالا وقتی اهمیت درک متقابل و تفاهم را ملاحظه کردید میتونیم اونو از جنبه منفی بررسی کنیم. گاهی معمولا ما برای رسیدن به نظریه ای اون رو از جنبه منفی بررسی میکنیم خطرات عدم درک متقابل رو در زندگی و در یک رابطه ملاحظه می‌کنید اما شما واقعا روی اون کار نمی‌کنید و همدیگر رو درک نمی‌کنید. شما در درک متقابل روش نمی‌کنید. اتحاد و یگانگی شما روش نمی‌کنه و زندگی شما فقط یک نظم داره. کارهای خاصی هست که شما انجام میدید و کارهای خاصی هست که همسرتون انجام میده و شما بر اساس این نظم کار می‌کنید. اما واقعاً روی ارتباطتون کار نمی کنید. سعی نمیکنید سازگاری خودتون رو مستحکم بکنید از خدا نمی خواهید که واقعاً به شما قدرت فوق طبیعی بده تا همدیگر رو بی غید و شرط محبت کنید فوق طبیعی با قوت محبت مسیح و شما روی این درک متقابل کار نمی کنید خب خطرات این رو مخصوصاً در فرهنگ ما ملاحظه کنید یک زمانها این مسئله مانند امروزه جدی نبود یکی از دلایلی که طلاق و از همپاشیده شدن خانوادهها این روزها شایع شده و بسیار هشدار دهنده و جدی است به خاطر تعلیمی هست که فرهنگ به ما میده. من فکر میکنم چیزی که امروز داریم فرمولی برای بدبختی هست و ما بدبختی رو درو میکنیم در بسیاری از خانوادهها شوهر خونه رو ترک میکنه و به سر کار میره زن در خانه مسئولیت خودش رو با بچه ها داره شوهر شیکپوش است و در اداره و محل کارش جذاب به نظر میرسه. او معصوم هست. همیشه سعی میکنه وقتی سر کار میره و دوش به دوش افرادی از جنس مخالف کار میکنه تأثیر خوبی بذاره. اونها همه در محل کار شیک پوش هستند. همه عطرهای خوبی استفاده کردند و برخی از این مردان در این الگوی فرهنگی بیشتر از همسرشون با منشی خودشون گفتگو میکنن. اونها کسانی رو که همکارشون هستند، زنانی رو که باشون کار میکنن بهتر از زنانشون میشناسن و این زنها هم اونها رو بهتر میشناسن چون بیشتر با اونها حرف میزنند اونها وقت بیشتری با هم میگذرونند این منشی یا منشی محرمانه او و یا منشی شخصی او هست او وارد زندگی این مرد میشه و غالبا این اتفاق میفته این دو نفر با هم یکی میشن و مرد زن خودش رو ترک میکنه و این چرخه دوباره تکرار میشه و حالا البته ما این رو در مورد زن و شوهرهایی که هر دو خانه را به قصد کار ترک می نیز داریم. این تنها فرمول برای بدبختی و فلاکت نیست. اگر اون دو نفر زن و شوهر هر دو غرق کار بشن و فرصتی برای درک همدیگر نداشته باشن، دیر یا زود کس دیگری اونها رو درک خواهد کرد. اون مرد زنی رو خواهد دید که او رو درک میکنه البته این در مورد هر دو طرف صدق می کنه. گفتیم که این همیشه جادهی دو طرفه هست اما ببینید که این فرمولی برای بدبختی هست این روشی منفی برای شروع هست اما بدبختی اینجاست که مردم همیشه میخوان درک بشن من در طی سالهای خدمتم با مردای زیادی آشنا شدم و به اعماق زندگی اونها وارد بودم و مورد اعتمادشون بودم از زندگی اونها چیزهایی یاد گرفتم که قبلا وقتی به عنوان یک جوان شهرستانی به اینجا اومدم نمیدونستم. من مردی رو میشناختم که بعد از سالیان دراز زندگی گناهالو ایمان آورد و من هفته سه بار با او به مدت سه سال ملاقات میکردم. او رو شاگردسازی میکردم. زندگی اونقدر بدنام و رسوا بود که ما حتی در مورد مسائلی مانند عضویت کلیسا یا چنین چیزهای صحبت نمیکردیم. زن او فکر میکرد که او احمقه که با من ملاقات میکنه و من به او میگفتم ازویت کلیسا رو فراموش کن. به درس دادن در کانون شادی فکر نکن. فقط بذار با هم وقت داشته باشیم. من کل کتاب مقدس رو اجمالاً برای او درس دادم. در طی سه سال من و او فقط کتاب مقدس رو با هم مرور کردیم. از وقتی او رو شناختم چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. در بین مردم شایع بود شایه او با زن همه خوابیده به جز زن خودش این یک بدنامی مطلق و رسوایی بود او یک بار به من گفت که او مرد خوشتیپی تیپی بوده ادعا می کرد که زنان به طرف او می اومدن اما او یک بار اینطور گفت که میدونی تمام این زنانی که من باشون با خوابیدم و با اونها رابطه داشتم فقط به خاطر ارضای تمایلات جنسی نبود اونها صرفا کسی رو میخواستند که با او حرف بزنن چون شوهر اونها با اونها حرف نمی زن. اونها فقط کسی را میخواستند که با اونها حرف بزنن. و چون شوهرشون با اونها صحبت نمی‌کرد، از این رو اونها جذب من می‌شدن. این به خاطر نیاز جنسی اونها نبود. این فقط چیزی درونی بود که ما رو به سوی هم جذب می‌کرد. حقیقتا تنها چیزی که اونها میخواستند صحبت کردن بود. البته شما عکس این را هم می‌بینید. مردی که زن رو درک نمی‌کرد میگفت او منو درک نمی‌کنه. و ما هیچ گفتگویی با هم نداریم و به نظر می رسد که بین اونها سازگاری وجود نداره و اونها در درک متقابل رشد نکردند و حتی برای اون تلاش هم نمی‌کنن و بعد می شنوید که مردانی که درگیر عیاشی هستند میگن زنم منو درک نمی‌کنه اما اونها اون زنهای بیرون منو درک میکنن پس به لحاظ منفی این بسیار خطرناکه که برای رشد یگانگیتون کار نکنید هر کاری که از دستتون برمیاد، برای درک متقابل هم انجام ندید. یک قضیه اساسی در درک همسرتون هست. قضیه که به نظر میرسه بسیار ساده هست. تا جایی که فکر میکنید، نیازی به اظهار کردنش نیست. مسئله اینه که بین یک مرد و یک زن تفاوت جدی وجود داره. تفاوت های فیزیولوژیکی، تفاوت های جسمی و همینطور تفاوت های اقلانی، احساسی و روحانی. مردان حتی مثل زنان پرستش نمیکنن. مثالی در این مورد است که من سالها پیش شاهد بودم و هرگز فراموش نمیکنم. فکر می کنم اگر روزی بخوام کتابی بنویسم، عنوانش این خواهد بود. چیزهایی که از مردم یاد گرفتم چون من چیزهای زیادی از مردم یاد گرفتم. یه روز زن یک دکتر به دیدن من اومد. او شخص دوست داشتنی بود، فردی خداشناس و بسیار متعهد و در کلیسای خودش بسیار فعال بود. و یک گروه پرستشی رو رهبری میکرد. من با او در برخی از کارهای کلیسایی ارتباط داشتم. شوهر او یک جراح ماهر بود. او در حالی که گریه میکرد به من گفت: من خیلی نگران شوهرم هستم. شوهر من اصلا روحانی نیست. خب من به او گفتم: میتونیم در این مورد دعا کنیم. من اول پتروس باب بسر رو برای او خوندم که چی کار میتونه بکنه و چطور میتونه دعا کنه. چون فقط خدا میتونه شوهرش رو روحانی بکنه. تقریبا حدود سه ماه بعد از اون بود که یکی از اهالی بخش کیسه صفراش مشکل داشت و قلبش ناراحت بود و لازم بود که کیسه سفرای او خارج بشه. اما به خاطر مشکل قلبیش این عمل خطرناکی بود. اگر کیسه سفرای او رو خارج نمی این احتمال وجود داشت که کیسه سفرا بترکه. بنابراین اونها مجبور بودند که او رو تحت همون شرایط خطرناک عمل کنند. من در بیمارستان به ایادت اون بیمار رفته بودم و با شوهر او صحبت می کردم. او کارگر ساختمانی بود. بعد از اینکه مدتی در کنار تخت با او صحبت کردیم، دکتر اومد و از من خواست که از اتاق بیرون بریم تا با من صحبت کنه. دکتر گفت امروز چه برنامه ای دارید؟ گفتم وقتم آزاده. او گفت این خیلی خوبه. من واقعاً باید این کیسه صفرا رو در بیارم. اما این کار بسیار خطرناکیه. توی بیمارستان یک اتاق دعای کوچک بود. دکتر از من پرسید که آیا میتونم در طی مدتی که او در اتاق عمل هست، در اون اتاق مشغول دعا باشم تا او پرستار رو بفرسته و بگه که خطر رفع شده؟ و من گفتم حتما خوشحال میشم که این کارو بکنم. خب به هر حال من باید روزم رو با اون خونواده در بیمارستان میگذروندم. پس از اینکه دکتر از من خواست برم و دعا کنم، رفتم پایین و مشغول دعا شدم. ساعت یازده صبح اون روز من تجربه روحانی در دعا برای اون زن داشتم و فهمیدم که خدا کاری انجام داد و بعد از پانزده دقیقه پرستار به اتاق دعا آمد و گفت دکتر میگه همه چی تموم شد همه چی عالیه و ما خطر رو پشت سر گذاشتیم خب وقتی زن به هوش می اومد وقتی دکتر اومد تا با او صحبت کنه قبل از اینکه دکتر چیزی به شوهر یا خانواده زن بگه به طرف من اومد و دست منو گرفت و گفت متشکرم که برای این عمل دعا کردی واقعا متشکرم چون این یک معجزه بود حالا شما قضاوت کنید آیا این دکتر روحانی نبود زنش می میگفت او مردی روحانی نیست به این دلیل من مجبور شدم با زن او ملاقات کنم و به او بگم که تماما در مورد شوهرت اشتباه می کنی. من فکر می کنم شوهر تو مردی کاملا روحانی هست. وقتی من داستان اون روز رو برای زنش تعریف کردم او گریه کرد خب، دکتر مردی روحانی بود، اما این رو مثل یک زن ابراز نمی کرد. به این دلیل زنش احساس می کرد که او روحانی نیست. برگردیم به اصل موضوع. من فکر می کنم اگر ما بخواهیم همسری رو که باش زندگی می کنیم درک کنیم، باید تفاوت بین جنس ها رو درک کنیم و باور کنید که اونها متفاوت هستند و باید هم متفاوت باشند. همونطور که قبلا هم بارها گفتم، چیزی که شما رو برای همسرتون جذاب میکنه همون تفاوت ها هستن. یک مرد مرده و باید هم مرد باشه. و یک زن زنه و باید هم زن باشه. من فکر می کنم یک زن به خاطر زنانگیش برای مرد جذابه. اما این تفاوت ها قطعاً باید گرامی داشته بشن، نه اینکه از بین برده بشن. و در این راستا من فکر می کنم باید درک کنیم که چقدر غمنگیزه که در فرهنگ امروزی ما به زنان گفته میشه برای اینکه به عنوان یک زن ارزش داشته باشند باید نقش و وظیفه یک مرد رو به عهده بگیرن. این چیزی نیست که به زن ارزش واقعیش رو بده. من فکر میکنم چیزی که به زن ارزش واقعیش رو میده برخلاف این هست. نقش و وظیفه یک زن به او در نظر مرد ارزش میده و البته این حقیقتا برعکسه اگر می همسرتون رو درک کنید، باید اهمیت گذشته رو درک کنید. این یک حقیقت محضه. مثلا فرض کنید، زن شما سالها تحت تأثیر شرایطی قرار داشته تا نوع معینی از یک شخص بشه. و در تمام اون مدت شما فرم می گرفتید که شخص معینی بشید. شما زمینه های متفاوتی رو در گذشته داشتید که تحت تأثیر اونها شکل گرفتید و وقتی شما در سنین جوانی در دهه دوم زندگیتون به هم رسیدید، باید اهمیت تمام اون سالهایی رو که همسرتون بدون شما پشت سر گذاشته درک کنید. اون سالها و تمام اون تجربیات او رو شکل داده و اگر می خواهید همسرتون رو درک کنید، باید اهمیت گذشته او رو درک کنید. باید بدونید که این چقدر اهمیت داره. بذارید مثالی براتون بزنم. کسانی که من و همسرم رو وقتی ما تازه ازدواج کرده بودیم میشناختن، الان وقتی بعد از سی سال میان ما رو ببینن، انتظار دارن که همسر من بیمار باشه. انتظار دارن او رو, رو روی صندلی چرخدار ببینن. چون سالها قبل او خیلی بیمار بود. وقتی اولین روز من به خونه اومدم او خیلی تب داشت. مفاصلش طوری بود که به اونها مفاصل داغ میگفتن. مفصلهای او متورم بودن و وضعیت وحشتناکی داشتند. من عصبانی و دپرس بودم و عملا به رختخواب لگت می زدم. بیماری او منو تلخ کرده بود و این وضع روز به روز بدتر می شد. من شوهر مشوقی نبودم، اما این بعدها به ما کمک کرد. مخصوصاً به او کمک کرد که به گذشته برگرده و ببینه آیا می بفهمیم چرا من به واقعیت بیماری او اینگونه واکنش نشون میدم نیازی نبود برای فهمیدن این نزد روانپزشک پزشک بریم. وقتی من ده ساله بودم، مادرم خیلی بیمار شد. ما یازده بچه بودیم و سر بچه آخر او در تمام طول دوران بارداریش توی رختخواب بود و خیلی طول نکشید که آخرین بچه به دنیا اومد. بیماری مادرم بدتر شد. بیماری او رو سرطان روده تشخیص دادن. بعد از یک جراحی بزرگ دو سال دیگر طول کشید و بعد خداوند او رو برد. او در تمام طول اون مدت بیمار بود و من به عنوان یک پسر بچه پدرم رو میدیدم که خانه ای پر از بچه و زنی بیمار داره و در دو جا کار میکنه. روزها به عنوان پستچی کار می کرد و شبها رانندگی تاکسی می کرد و سعی داشت که از خانواده مراقبت کنه و بالاخره زنش رو از دست داد. خب من فکر می کنم در زمیر ناخودآگاه ذهنم تقریبا این نظریه رو ساخته بودم. میدونید یک زن چیکار میکنه؟ او بیمار میشه و بعد می میره و شما رو با یه مش بچه تنها میذاره ببینید اون موقع ما پنج بچه داشتیم دوتا قنداقی بودن و سهتا کودک و من میومدم خونه و اون مریض بود این منو و افسرده میکرد حالا وقتی کمی به علت اون فکر کردیم خیلی مشکل نبود که علت عصبانیت و افسردگی منو بدونیم و اون موقع بود که من فهمیدم و به خودم گفتم که به خودت بیا مرد. این مادر تو نیست این همسر تو هست و به کمک تو نیاز داره و بعد از اون ما سالهای طوفانی وحشتناکی رو پشت سر گذاشتیم و اینجا بود که خدا منو مخصوصاً به لحاظ روحانی رشد داد اما ببینید چقدر برای او مهم بود که اهمیت گذشته منو درک کنه اگر او حتی به گذشته من فکر نمی کرد چی می به احتمال زیاد حتی میشه گفت او آماده طلاق می و با خودش می من اینجا مریض هستم پنج تا بچه دارم و تنها کاری که تو بلدی بکنی اینه که عصبانی بشی و به تخت خواب لگت بزنی. این واقعا میتونست دلیل خوبی برای طلاق باشه. اما ببینید این مهمه که اگر شما همسرتون رو درک کنید اگر بخواید این شخصی رو که با او زندگی میکنید درک کنید باید اهمیت گذشته او رو درک کنید. من فکر میکنم این بسیار مهم هست و من فکر میکنم وقتی سعی میکنیم کسی رو که با او زندگی میکنیم و با او ازدواج کردیم درک کنیم چیز دیگری که لازم روی اون تمرکز بکنیم تقدس فردیت هست. خدا هدفش اینه که ما متفاوت باشیم. او وقتی هر کدوم از ما رو خلق میکنه الگو و قالب رو کنار میذاره و این نشون میده که هر کدوم از ما منحصر به فرد هستیم. کلمه خود در دیکشنری به عنوان منحصر به فرد بودن و فردیت هر شخصی هست که او را از دیگران متمایز می کنه. حالا اون شخصی که با او ازدواج کردید مقرر هست که منحصر به فرد و با فردیتی مجزا از دیگر اشخاص روی زمین باشه وقتی با او زندگی می به منحصر به فرد بودن خودتون به فردیت خودتون و به چیزی که شما را از دیگران متمایز می کنه هم پی می برید. شما باید به همسرتون کمک کنید این رو بفهمه و او باید به شما کمک کنه که این رو بفهمید. وقتی همه اینها رو کنار هم قرار میدید، این مهمه که تعریف کلمه درک متقابل رو بفهمید. من اهمیت تعریف درک متقابل رو میدونم. در پرتو این حقیقت که ما کاملا متفاوت هستیم به این تعریف درک متقابل گوش کنید. توافق دو جانبه که تفاوت ها رو حل میکنه. آیا این تعریف زیبایی برای درک نیست؟ توافق دو جانبه که تفاوت ها رو حل میکنه. ما بسیار متفاوت هستیم. او یک زن هست و من یک مرد. گذشته متفاوتی از یک دیگر داریم. ما از بسیاری جهات متفاوتیم. اما درک چه معنی داره؟ درک معنیش اینه که توافقی دو جانبه وجود داره که این تفاوت ها رو حل می کنه. تعریف دیگر میگه سازش طرفین بر سر نظرات و علایقی که منجر به بصیرت و همفکری میشه حالا برای درک کسی که با او زندگی میکنید باید تفاوت جنس ها رو درک کنید باید اهمیت گذشته رو درک کنید و اینجا نکته بسیار مهمی هست برای درک همسرتون باید بخواهید که او رو درک کنید رو راست بگم بسیاری از افراد متأهل هستند که نمیخوان این کارو بکنن. در مشاوره با زوجها من همیشه با این شروع میکنم. خب برای درک همدیگر باید اینو بخواید. نظرتون چیه؟ آیا شما میخواید؟ گاهی اوقات ها میگن نه، بیخیالش، من نمیخوام. شما در این مورد نمیتونید کار زیادی بکنید. اما اگر بخواید همسرتون رو درک بکنید، من پیشنهاداتی بهتون میدم. برای درک همسرتون باید بر او متمرکز بشید. باید قانون طلایی رو در این مورد به کار بگیرید. این یکی از بزرگترین آیات در کتاب مقدس در مورد روابط انسانی هست که در متا میگه با دیگران همان گونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار کنند. باید خودتو جای اون شخص قرار بدی و بعد از خودت این سوال رو بپرسی. اگر من شوهر بودم میخواستم زنم برای من چیکار کنه. اگر من زن بودم میخواستم شوهرم برای من چیکار کنه. این غیر طبیعیه اما اگر از خدا بخواید به شما فیض بده میتونید این کار رو بکنید. دومین پیشنهاد اگر شما تصمیم بگیرید و بخواید که همسرتون رو درک کنید اینه. باید به همسرتون گوش کنید. گوش کردن واقعا یک هنره. چیزهای زیادی هست که باید در مورد گوش کردن یاد بگیریم که اکثر ما احتمالا یاد نگرفتیم. اما واقعا تا حالا سعی کردید که هنر گوش کردن رو در ازدواجتون به کار بگیرید؟ گاهی وقتی با زوجی ملاقات میکنید کاملا معلومه که اونها به هم دیگه گوش نمی کنند. حواسشون جای دیگه ای هست. شما میتونید این رو بفهمید. در حالی که فکر میکنند به هم دیگه گوش میکنند. معنیش اینه که وقتی طرف مقابل صحبت میکنه من به این فکر میکنم که وقتی او حرفش رو قط بکنه چی خواهم گفت؟ این چیزیه که احتمالاً بهش گوش کردن میگیم اما در واقع این گوش کردن نیست عیسی گفت آن که گوش شنوا دارد بشنود شنیدن داریم تا شنیدن آیا واقعا همسرتون رو میشنوید وقتی شوهرتون با شما صحبت میکنه آیا واقعا او رو میشنوید من این آیه در لغا هفت رو خیلی دوست دارم اونجا که در آیه 44 عیسی در خانه یک فریسی هست فریسی او رو برای صرف غذا دعوت کرده اما حتی پاهای او رو نشسته زنی داخل میشه گریه میکنه و با عشقهاش پاهای عیسی رو میشوره و بعد با گیسوانش خشک میکنه فریسی پیش خودش فکر میکنه اگر او میدانست که این زن چه کاره هست به او اجازه نمیداد و بعد عیسی از او سؤال وحشتناکی میپرسه عیسی به او گفت شمعون این زن رو میبینی؟ من فکر میکنم این سؤال بسیار بزرگی بود در زبان یونانی کلمات متفاوت زیادی برای دیدن وجود داره و البته معنی این یکی این بود آیا واقعا او رو میبینی؟ وقتی به این زن نگاه میکنی چی میبینی؟ من فکر میکنم این سؤال فوقلاده ای هست که باید از شوهران پرسی آیا این زن رو میبینی؟ آیا واقعا او رو میبینی؟ این همون درک کردن همسرتون هست من گمان میکنم چیزی که ما واقعا میگیم اینه اگر شما میخواهید همسرتون رو درد کنید و تصمیم گرفتید و این رو میخواهید پس باید همسرتون رو محبت کنید. فرانسیس آسیسی یکی از قهرمان‌های منه. وقتی او به دانشکده الهیات رفت، این خبر بزرگی در اون زمان بود. این خبر همه جا پیچید چون او پسر بازرگان ثروتمند پارچه بود. بعد از گذراندن دوره دانشکده که در اون ایام به این معنی بود که چند سالی باید با یک کیسه کرباس گدایی میکردند تا ثابت کنند که دنیا، جسم و شریع رو انکار کردن. وقتی زمان دستبندی می رسید که این رسمی بود که برای انتخاب کسی برای معزه، وقتی نوبت معزه به فرانسیس رسید کلیسای شهر مملو از جمعیت بود چون که او قبل از رفتن به صومعه شخص معروفی بود و وقتی او بلند شد که معزه کنه همه فکر میکردند که این بزرگترین موعظه خواهد بود که تاکنون شنیدند او گفت خدا منو برای موعظه دعوت نکرده بلکه برای عمل پس بیایید دعا کنیم و بعد او این دعا را کرد خداوند منو وسیله ای برای صلح خودت بگردان در آنجا که دشمنی هست بگذار محبت بکارم آنجا که رنجش هست اف آنجا که شک هست ایمان و در جایی که ناامیدی هست امید و در جایی که تاریکی هست نور و در آنجا که غم هست شادی بکارم. حالا اینو ببینید؟ آه خداوندا عطا کن که به دنبال این نباشم که بیش از آنچه که مشورت میدهم مشورت بگیرم. اتا کن آنچنان درک شوم که درک میکنم. آنچنان محبت شوم که محبت میکنم. چون با دادن هست که دریافت میکنیم، با عف کردن هست که عف میشبیم، با مرک هست که در حیات ابدی متولد می شویم این دعای باشکوهی هست و البته بخشی که من می خوام روش تمرکز کنم این بخش است. عطا کن که به دنبال این نباشم که بیش از آنچه که درک می کنم درک شوم. ببینید به نظر من برای درک کردن کسی که با او زندگی می کنید باید بر همسرتون متمرکز بشید او رو در مرکز زندگیتون قرار بدید و نگران این نباشید که آیا او شما رو درک می یا نه؟ چالش برای شما این هست. آیا شما او رو درک می کنید؟ آیا برای درک او تلاش می کنید؟ این بدین معنی نیست که آیا شما از او محبت دریافت می کنید یا نه؟ مهم اینه که آیا او را محبت می کنید؟ ببینید این چیزی انقلابی هست. این بسیار ساده هست اما در عین حال متحول کننده حالا این حلقه ها جفت هستند به خاطر اینکه اونها به هم وصل شوند برای درک همسرتون باید در سطح عمیقی با او گفتگو کنید. یادتونه وقتی در مورد گفتگو مطالعه می کردیم در مورد ابعاد متفاوت گفتگو با شما صحبت کردم. سطحی بود که در اون سطح هیچ گفتگویی نبود و بعد گفتن چیزهایی بود که شما می دونستید گفتن چیزهایی که فکر میکردید، چیزهایی که احساس میکردید و بعد گفتیم امیغترین سطح گفتگو زمانی بود که شما در مورد این صحبت میکردید که شما کی هستید، چی هستید و کجا هستید. نسبت به اینکه که فکر میکردید باید چی، کی و کجا باشید و فکر میکنید که همسرتون کی، چی و کجا هست و باید کی، چی و کجا باشه. این واقعا گفتگویی در سطح عمیق هست خیلی از مردم در این سطح گفتگو نمیکنند چون بسیار مقرور هستند اگر واقعا می خواهید گفتگو کنید فقط این نیست که بگید لطفا اون نمک رو به من بده و یا فکر می کنم امروز باران خواهد اومد. منظور من از گفتگو گفتگو در سطحی عمیق است وقتی در اون سطح عمیق گفتگو کنید خواهید فهمید که شما قلبتون رو به دست همسرتون دادید و او هر کاری که بخواد می با اون بکنه او میتونه اون رو فشار بده. میتونه اون رو روی زمین بندازه و پاش رو روش بذاره. و بدترین کار ممکنی که احتمالاً میتونه بکنه اینه که اون رو نادیده بگیره. من فکر میکنم کنم ترین چیزی که در طی سی سال خدمت مشاوره هم شنیدم از مردی بود که فرمانده زیردریایی اتمی بود. او مرد بسیار مهمی بود و در ضمن مردی بسیار خشن. همسرش مرتبا از او میپرسید راجه به من چی فکر میکنی؟ راجه به من چی فکر میکنی؟ و بالاخره یه روز حوصله مرد سر رفت و به او گفته بود زن تو خودت رو مسخره کردی من اصلا به تو فکر نمی کنم. به نظر من این بدترین چیزیه که تا حال شنیدم کسی به همسرش بگه چون مخالف محبت نفرت نیست بلکه بی تفاوتی هست پس اگر شما قلبتون رو به دست همسرتون بدید و او اون رو نادیده بگیره خب این خیلی بیمهریه این دردناکه. اما ببینید اگر میخواهید قلبتون رو به دست همسرتون بدید شما آسیب پذیر هستید و اما من فکر نمی کنم هیچ وقت به درک متقابل با همسرتون برسید مگر اینکه این کار رو بکنید یعنی اگر بخواید در سطح عمیق گفتگو کنید باید یاد بگیرید که چطور از اوطه مشاجرات بر بیاید. چون وقتی به گفتگوی امیق بپردازید مسلما مشاجره خواهد بود او چیزی رو که شما میخواهید بهتون نخواهد گفت اگر همسر شما واقعا همسر خوبی باشه و به رشد شما علاقمند باشه چیزی رو که فکر میکنه لازم شما بشنوید به شما خواهد گفت. شما شاید نخواهید این رو بشنوید و این موجب رنجش شما خواهد شد و مثل پشت به لاک خودتون فرو خواهید رفت. مگر اینکه یاد بگیرید چطور از اوطه مشاجرات بر بیایید. روش دیگری که بتونیم چیزی شبیه به اون بگیم اینه. اگر بخواید در این سطح عمیق رو داشته باشید، باید یاد بگیرید که چطور خشمتون رو مهار کنید. خشم احساس جالبیه. من نمیدونم شما به عنوان مسیحی در مورد خشم چی فکر می کنید؟ آیا خدا در کلامش اجازه میده که مسیحی پر از روح حسابانی بشه؟ آیا خدا فکر میکنه خشم احساس خوبی برای یک مسیحیه؟ خوب به این فکر کنید. من مجبور شدم سالها قبل وقتی ازدواج کردم این مسئله رو حل کنم. قبلا به این اشاره کردم. من پر از غیظ و خشم بودم. مردی بسیار تند عصبانی بودم. اما برای مقابله با خشم مجبور بودم چیزهایی در مورد خشم یاد بگیرم. هرگز این واقعه رو فراموش نمی کنم. من مشت محکمی روی رادیو پورتابل کوچه توی خونه زده بودم و شکاف بزرگی بالای اون به وجود اومده بود. انگار که بمبی روی اون افتاده بود دو سه سال بعد ما به ایالت دیگری نقل مکان کردیم و همسرم اون رادیو را هم به همراه خودش آورد او اون رو کنار تختخواب ما قرار داد او همیشه اون رادیو رو در همونجا قرار میداد تا به من یادآوری کنه وقتی ما داشتیم سعی میکردیم همدیگر رو درک کنیم سعی میکردم اینو برای او توضیح بدم که من واقعا از او عصبانی نبودم من از اون بانکدار عثوانی بودم که منو با وادار کردن به اعتراف اینکه بگم من رفتار خوبی با پول ندارم شرمنده کرد چون من درخواست وام کرده بودم اما من از این واقعیت عصبانی بودم که در مورد مسائل مالی مدیریت خوبی ندارم پس این ربطی به چیزی نداشت که همسرم گفته بود حالا وقتی به بررسی خشم بپردازید دو سوال هست که همیشه باید در مورد خشم بپرسید چرا عصبانی هستید؟ و از دست چه کسی عصبانی هستید منبع خشم شما چیه؟ سبب واقعی خشم شما چیه؟ به ندرت شما از دست کسی عصبانی هستید که خشمتون رو روی سر او خالی میکنید. معمولاً از خودتون عصبانی هستید همونطور که من در اون مورد از خودم عصبانی بودم. امکان داره شما از دست رئیستون عصبانی هستید و نمیتونید مشت به صورتش بکوبید. پس وقتی به خونه رسیدید به چیز دیگه ای مشت میزنید. اما در واقع شما از همسرتون عصبانی نیستید. همسرتون شما از دست رادیوی کوچک پورتابل لصبانی نیستید. اون فقط یک چیز کوچک بی جان است. برای اینکه مطالبی رو در مورد خشم روشن کنیم، بیایید با هم افسوسیان 42627 و آیات سی تا سی رو بخونیم. به این گوش کنید: خشم گیرید و گناه مورزید. خورشید بر غیز شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهی. روح القدس را نرنجانید. زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و زامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغز و غیز و خشم و داد و فریاد و دوشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید نسبت به یک دیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید حالا اینجا یه فرمولی وجود داره از این پس دیگر هیچ نوع بغز و غیض و خشم و داد و فریاد و دوشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید من فکر میکنم کاملا روشن هست که خدا به مسیحی پر از روح اجازه عصبانی شدن نمیده. اون مد با این کلمات شروع شده. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند. و میخوام بهتون بگم که خیلی از مردم اون کلمات اول این آیه رو آیه زندگیشون کردن و میگن ببینید خدا گفته خشم گیرید. زمانهایی هست که باید عصبانی شد. اما خدا چنین چیزی نگفته اگر ما واقعا این متن رو بفهمیم معنیش اینه زمانی که خشمگین میشید خدا اونقدر واقعبین هست که میدونه شما عصبانی خواهید شد او میگه نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب و آفتاب باقی بماند این متن در ادامه میگه بذارید خشم و تمام قیز شما بیرون برود در پیدایش چهار مثالی برای خشم هست که منو از خشمم نجات داد. و من اون رو برای حل مشکل خشم به همه شما توصیه می کنم این فقط مردان نیستن که عصبانی میشن این یکی از بزرگترین داستان های کتاب مقدس هست. درست در همون ابتدای کتاب مقدس او میگه و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد و حابیل نیز از نخوس زادگان گله خیش و پی آنها هدیه ای آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت هفروخته شده سر خود را به زیر افکند آنگاه خداوند به قائن گفت چرا خشمناک شدی؟ چرا سر خود را به زیر رفکندی؟ اگر نیکویی میکردی آیا مقبول نمیشدی؟ اگر نیکویی نکردی گناه بر در در کمین است و اشتیاق تو دارد. اما تو وی مسلط شوی و قائن با برادر خود حابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند قائن بر برادر خود حابیل برخواسته او را کشت پس خداوند به قائن گفت برادرت حابیل کجاست گفت نمیدانم مگر پاسبان برادرم هستم در این داستان کوچک من فکر می کنم شما تعلیم بزرگی در مورد خشم میبینید. دو نفر رو می بینید آقای مقبول و آقای نامقبول هر دوی اونها برای خدا هدیه می‌آورند در اصل این فکر از قائم بود که برای خدا هدیه ببرن. خدا از هدیه هابیل خوشنود هست، اما از هدیه قائم راضی نیست. و شما توی جملات میبینید که میگه او از هابیل خوشنود بود و بعد از هدیه او. و او از قائم راضی نبود و بعد از هدیه او راضی نبود. حالا رو راست بگم، من معتقدم که گفته نشده که چه چیزی از هدیه قائم مورد قبول نبوده. او یک کشاورز بود. پس از حاصل زمین برای خدا هدیه آورد. حابیل چوپان بود و حیوانی به خدا تقدیم کرد. بسیاری برای این که هدیه او یک قربانی خون بود و آن دیگری نبود. اما در این مرحله در کتاب مقدس هیچ تعلیمی در مورد قربانی خون وجود نداره. من گمون می کنم تأکید بیشتر روی دو مرد هست تا دو هدیه. یکی از اونها مقبول هست و دیگری نیست. پس خدا هدیه او را میپذیره و دیگری رو نمیپذیره. حالا داستان ادامه پیدا میکنه و آقای مقبول در جلوی آقای نامقبول راه میره و آقای نامقبول او رو میکشه. او رو میزنه تا بمیره و بعد خدا از دقایق میاد و از او میپرسه چرا عصبانی هستی؟ چرا افسرده ای؟ و اینجا بهترین سوالی هست که از او میپرسه. اگر نیکویی میکردی آیا مقبول نمیشدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بردر در, در کمین است و اشتیاق تو داره. حالا به نظر من این یک درس بزرگ در مورد خشم هست. وقتی من عصبانی بودم، از دست همسرم عصبانی نبودم. من از دست خودم عصبانی بودم. من مقبول نبودم چون که در مورد مسائل مالی مدیریت خوبی نداشتم. اما ببینید، باید خدا از من سؤال میکرد چرا عصبانی هستی؟ چرا به رادیوی کوچک مشت میکوبی؟ و بعد بزرگترین درس برای من این میبود. رابطه رو با خدا خوب کن. یاد بگیر که مسائل مالیت رو مدیریت کنی تا این همه برای خودت و خدا و دیگران نامقبول و از خودت عصبانی نباشی اما اگر این مسئله رو حل نکنی در سراسر عمرت به رادیوها مشت خواهی کوبید و حابیلها رو خواهی کش و این طور نابود خواهد کرد به نظر من خشم چنین چیزیه حالا باید اینو بگم و در آیات بعدی به این خواهیم پرداخت این عبارت دیگری از افسوسیان هست پولس اینطور میگه کسی که زنش رو دوست داره خودش رو دوست داره. نظر شما در این مورد چیه؟ کسی که زنش رو دوست داره خودش رو دوست داره؟ ببینید اگر من در اون داستان کوچک خودم رو دوست داشتم اون موقع این ظرفیت رو داشتم که زنم رو هم دوست داشته باشم. اما چون خودم رو دوست نداشتم از خودم ناراحت بودم و خشم و غیظم رو سر او خالی می کردم. اما چون خودم رو دوست نداشتم از خودم ناراحت بودم خشم و قیزم رو سر او خالی می‌کردم. وقتی سعی می کردم با مشکل خشم مقابله کنم این برای من روشن شد که همسرم و فرزندانم رو دوست داشتم اما محبتم رو همیشه نسار زن و فرزندانم نمیکردم مخصوصاً وقتی که خودم رو دوست نداشتم وقتی به هر دلیلی از خودم ناراحت بودم اون موقع ظرفیت اینو نداشتم که محبتم رو نسار اونها بکنم پس کاری که باید میکردم این بود که رابطه ام را با خدا اصلاح می کردم و میفهمیدم که خدا منو دوست داره اون موقع میتونستم یک اعتماد به نفس درست و موجه داشته باشم. اگر ما بخواهیم همدیگر رو درک کنیم، به علاوه بر درک اهمیت تفاوت بین جنس ها اهمیت سوابق گذشته و همه چیزهای دیگه، باید به جایی برسیم که اهمیت اعتماد به نفس درست رو درک کنیم. در متا 25 تا 40 یکی از معلمین شریعت از عیسی سوالی پرسید و عیسی عبارت بزرگی رو اظهار کرد. سوال معلم شریعتین بود ای استاد کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار این اولین و بزرگترین حکم شریعت است و دومین حکمی که به همان اندازه مهم هست شبیه اولیه یعنی همسایه خود را مانند خویش دوست بدار در این دو حکم تمام تورات و نوشته های خلاصه شده حالا اگر جمله ای رو که عیسی گفته مطالعه کنید، چیزی که او میگه اینه: سه مسیر در زندگی وجود داره که باید اونها رو اصلاح کنید. اگر میخواهید شاد باشید و شخصیتی منسجم داشته باشید، باید به بالا نگاه کنید و رابطتون رو اصلاح کنید و به درون نگاه کنید و اون رو هم اصلاح کنید و بعد باید به اطراف نگاه کنید و رابطتون رو با دیگران اصلاح کنید. چون اگر رابطه با بالا و درون و اطراف یا بیرون درست باشه، اون وقت شخصیتی منسجم خواهید داشت در اون سه مسیر در جمله ایسا در متا 22 او گفته به بالا نگاه کن و وقتی به بالا نگاه می محبت کن خدا رو محبت کن و بعد گفته به اطراف نگاه کن و همسایت رو مانند خودت محبت کن معنیش اینه که او می وقتی به درون نگاه می خودت رو محبت کن این چیزیه که شما میتونید به اون محبت به خود بگید اما یک محبت به خود هم هست که نباید وجود داشته باشه. محبت به خود معنیش این نیست که هر وقت از جلو آینه عبور میکنید و بیستید و خودتون رو عبادت کنید. خیلی ها فکر میکنن محبت به خود یعنی خودپرستی. من دوستی دارم که این رو اینطور خلاصه میکنه. این دوست سالها معتاد بود و برای ترک اعتیاد و مجبور بوده که این سه چیز رو یاد بگیره. خدا رو تماماً محبت کن خودت رو درست محبت کن و دیگران رو بی قید و شرط محبت کن. وقتی دوست من توانست که هر سه این مسیرها رو طی کنه، وقتی توانست بگه خدا رو تماما دوست داره و خودش رو به درستی محبت می اون موقع توانست دیگران رو بی قید و شرط محبت کنه. او الان ده ساله که تماما از اعتیادش آزاد شده، چون واقعا این سه مسیر در زندگی او به خوبی کار کرده. اگر شما هر کدام از اونها رو در جایگاه درست خودش قرار بدید، واقعا کار میکنه اما ببینید وقتی پولوس میگه کسی که زنش رو دوست داره خودش رو دوست داره او حقیقتی رو برای ما آشکار میکنه وقتی شما به درون نگاه میکنید خودتون رو محبت نکنید در واقع اگر از خودتون نفرت داشته باشید اگر خودتون رو حقیر بشمارید تا جایی که خودتون رو از بین ببرید اون موقع نمیتونید با هیچکس کس کنار بیاید من میخوام اینجوری جنبند میکنم شما با کسی زندگی میکنید زندگیتون رو با کسی شریک میشید و وقتی زندگیتون رو با کس دیگه ای تقسیم می کنید میخواهید اون شخصی رو که با او زندگی می کنید درک کنید. حالا امکان نداره که گفتگو رو از درک متقابل جدا کنیم. چون چونکه گفتگو ابزاری هست که یگانگی رو حفظ میکنه و درک رشد یگانگی رو نشون میده. اگر شما در نگاه به بالا با خدا گفتگو کنید، اگر هم مرد و هم زن این کار رو بکنن من فکر می نه تنها اونها میتونند با همدیگر در سطح افوقی گفتگو کنند، بلکه این قابلیت رو دارن که همدیگر رو درک کنن. چون که حقیقت اینه من اگر خودم خودمو درک نکنم نمیتونم زنم رو درک کنم. من فکر میکنم او هم بدون کمک خدا نمیتونه منو درک کنه. چون من حتی خودم خودمو درک نمیکنم. من فکر میکنم داوود حکمت زیادی نشون داده وقتی همصدا با ارمیا گفته دل از همه چیز فریبنده تر است. کیست که آن را بشناسد؟ و در آیه بعدی گفته فقط خدا میتونه قلب انسان رو بشناسه. خب اگر این حقیقت داره اون موقع باید ما هم مثل داوود به بالا نگاه کنیم و بگیم خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو مرا بیازما و افکار مرا بخوان ببین آیا در من خطایی هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. این تنها راهیه که ما میتونیم خودمون رو درک کنیم و میتونیم این رو در روابط زناشویی برای درک متقابل به کار بگیریم. اگر یکی از زوجین با خدا گفتگو نکنه، اون موقع گفتگو با هم دیگر و درک متقابل متوقف خواهد شد. تنها کسی میتونه گفتگو کنه و درک داشته باشه که در تماس دائم با خدا هست. چون فقط خدا ما رو درک میکنه. من چیزهای زیادی رو تا امروز یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم اینه. در یعقوب باب یک آیه پنج او میگه اگر کسی از شما فاقد حکمت باشه آن رو از خدا بخواهد. و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند آن را به او خواهد داد. و من تعجب می کنم که این چطور کار میکنه؟ اگر حکمت ندارید از خدا بطلبید این رو در رابطه با همسرتون هم به کار بگیرید. شما نمیتونید همسرتون رو درک کنید. شاید او خیلی پیچیده و سخت و غیر قابل درک باشه. خب من خبری براتون دارم. خدا همسر شما رو درک میکنه. خدا زنان رو درک میکنه، مردان رو درک میکنه شاید مردان زنان رو درک نکنند و زنان مردان رو درک نکنند اما خدا هم مرد و هم زن رو درک میکنه پس ای زنان به خدا اعتماد کنید وقتی شما وعده های او رو بپذیرید او میتونه به شما بگه که کی چه کاری رو برای همسرتون بکنید و شما مردان این برای شما هم صدق میکنه خدا هم مردان و هم زنان رو درک میکنه پس کاری رو که او میگه انجام بدید و من فکر میکنم شما تعجب خواهید کرد وقتی ببینید که این چطور کار میکنه اما وقتی او بسیار بسیار پیچیده است و شما نمیدونید چی چیکار بکنید از خدا بپرسید خدا به شما حکمت خواهد داد و نشون خواهد داد که چیکار باید بکنید چون که ما فقط باید به بالا نگاه کنیم به درون نگاه کنیم به قلب خودمون و به قلب همسرمون نگاه کنیم تا بتونیم بعد از اون به اطراف نگاه کنیم و همدیگر رو درک کنیم دوستان حقیقت اینه که ما هرگز کاملا نه خودمون رو درک میکنیم و نه همسرمون رو با اون یکی از این چیزهاییه که ازدواج رو هیجان انگیز میکنه. با این حال ما خانده شدیم که در ازدواجمون رشد کنیم و تفاهم اینو امکان پذیر میکنه. ما مرتبا نیاز داریم که در درک و محبت رشد کنیم. از خدا بخوایم به ما کمک کنه تا هر روز خونواده ما و محبت ما به همسرمون بازتابی از محبت خدا به کلیساش و محبت کلیسا به مسیح باشه. چه تصویر زیبایی. و به این دلیله که دشمن سخت تلاش میکنه تا این تصویر رو نابود کنه. امیدواریم که خدا به شما برکت بده و شما رو در اطاعت کامل از مسیح و اعتماد کامل بر اون تشویق کنه تا خونواده شما برکات اون رو دریافت کنن.